ا بر گوری گلاحاحمت پس دوم و حالا دیگر وقت اینها گذاشته از اینکه این ما سنگ کار ما بهمان بر چند می تند غذا داریمیم پسمثل ما روطر کار آن گ کردیم که به جای اول نه اوراغ نه بعض این نبی، خلا بحث داری است که یک زن و شوهر با همه رویگتو رفت دامت هر و مسئولیت های خودشن چطور متوانند چطور بمانند به خصوص هستی که خلط اولاد مرض مزمن فوهر است و این 420 متر مربه خالی مانده است و محسسات اجتماعی هنوز دنیا نیامدن و ناچارسات ها در بیشتر مسئول میبینیم و همین درامت رو می میتواند این فست و چهار سو و بر فرض هم که در ما نبود و به در ما دریل را چه برد در هر مرز و زنی حر. و در ما حضرتی هست این کارمان داشت این اگر یک کارماند این که اگر یک کارماند خلالی میشود یک نفس اوزی که یک اوزت روزی را مرتل کرده از از اگر همی و اگر همین یکی خیلی اوزت های دیگر هم هست اینکه محبت یا رایتی نظرت دلتریت بکنی تو دردی به لرزی فقط را به خاطره کسی فراموز کنی تو و توتفالیت را و درد فرحایت را آن فارم که مرد اگر بچه میداشت رسوسی نمیشه، اگر رسوسی نشده بود یا به خودش لر نرخده بود سرطن نگرفته بود به که می کنم می بینم آخر برد یه چیزی نه یک کسی باشد که ما دوتهایی تو به ما کنیم همه ی را همه ی رعال ها را ما کدام ی رعال هست یک سن آدمی را داشت که بسر سر بسرمی سر که رفت برش کنیم به پایش فیل کنیم بسر که به چه صورت برای توی شویی و چه بلولو برای پیش شدن داریم لح رخیر کردن نه اینکه صرفتشم صرف نه اینکه شام، یعنی که هری جلو رو, رو, رو هم نمیشینن دور تو با آینه و شاهده کذر رو کدر از طالی باشی یا کدر از عیب و نه اخر یک چیزی به وسط میان دو آینه باید ببرکنی نهایت از سید داشته باشید حالای که اگر راستش به بکارید ما دو, دو دیواریم دوییچ کوچه ای میانمان نیست یه وقت ی ایش کس نگذرد امیدی نوی بود که اینکه بود اینکه دو به این خیلی بود که بچه ای رو به فرزندی ها بود کنیم این درانگرد و مشکلت و درچه های مختلف از صحب محاملوکایی گرسوز مجرد بومی و از مشک از شیراز یعنی خانه ها و پداریت ها و ها و موارد خصوصیت و این همه زمانی بود این همان زبانی بود که مهدی ملکی رفته بود در سالاریستا و مشهد بچه, بچه ای چیزی پرزندی بود. شش ماهه. در و رضو رضو. سرسرت در بود 5-6 ماهه. و در شیرف پشت و کم هیچی بود. این یک مادر. باشه در چیزی را در و در اصطلاح بود. این یک مادر. باشه در چیزی در زندگی و در اصطلاح بود. این یک مادر. باشه در چیزی را در زندگی و در اصطلاح بود. این یک مادر. باشه در بود. و بود. ساعت نفت بیرفت هست به همین سادگی کار رو حتی با تیری هم نرسید بچه زنی نفت خوش هست بود یعنی از ایچه از ترچه داری حسابش از بیتواری رو سر رست کن یه که خیاتی باید کند کرد اما خیاتی نکرد سرمایه بیشتر میخواست و خلک بیشتر بایدارش کردیم کان بایدارش درست کند کرد و گرم نمی آیش رو به سکود برستردن از سفرش در خانه ها و گروبی های روش مشکلوی پس از مرگست بازنندگان در منده بودن چی جاوار بر سفرش ها و قبول چه یوری بودن برسترد الان کلو سفر بون سفر بون از سفر دگران می کند که مادر رستر سفر سفر برستر بردراز و بیبرزگست بردرازش را می پهمد اما بیبرزگست خانه ما چی گستم چه می بله این را میگفتن که چه میگفتن؟ بله این را میگفتن که مهری میره پوستمان را و ما هم را دادیتا یه رو سر اگناها زن در سر که هم در اومد به ارسی بلگون کرده که ندارده جلال بگویی یک بچهی بسیار خوب سراغ دارد هم تدار دارد و هم مادر تایش هم به شیرگاه شیخ شیرخالده نرسیده و بیماری هایش برداریتگاهی برداری برداری هم ندارد فعلن فعلن. مادرش گذاشته، مدرسه گذاشته، ساناد و مدرک میسه میخواید چیزهای دیگر هم میده. و برای فلان روز، برای فلان جا. وقتی به سر اصلش برویم، زنگ میگه، زنگ میگه که من گذار. بلای، زناب میگیم. منم برادام برویم. یه مرد که باز بر لکولوشی آبی زن است. یعنی دوباره در مس مس برابر است. دوباره ابرویش بزرگ ترسویش است. دست که بله میگیرنه تو هر تشتم یه ازولا و ترخ میزنم بچه سه ماه و چهار ماه دنگاه ننگاه تو بزرگانی هم در کار بزنم بچه هر از از سوزن همانه داره از مدرسه کنیم و شمکنیم که بخترت را میسپرم و بست قابلیم تا توسج کنم باگی مگرد بچه شهر ماه را میشه را از از از می شود می از خیلی به تقمترکی یک فرد از بودودن گذاشت و روزی همین دفترها روش ها از در صلب رسالش بودن همین جویه ها بوده که همه روزارت می رنگی نگه داشت و بچه به هر صورت دومدرمی که بود. و نزاقت هم فلان قادره بوده دارن که به قادره در خانش اداری به دفتره کده و پنگ ماه و شش ماه و بروس فلان اشه می آرد به دست یک ستر پاپرگری اینه خدا هزرت و اینه رسولی امیر از کدن آن وقت از اون را می افتن آنه ی خانواد و دکنت قادر داد اینه هزرت که بزن فرنگی از زفر برمی جذر حتی رو نشان نمی زد نه ما دیگر غذر به نظر بزیرایی می کنن و پرستر رو شیر نفسیش و حالا دیگر به نظر بیخویش همیش برای گفت برای این شوهر که شده و شده بدونه که روز حالا چه میگوی؟ اینجا زن از میپرسد حالا چه میگوی؟ اینجا زن از زن میپرسد من در تمام که کلمه هم نگفتم جد که آن روز سر نهاد بروست نیست من اینکه کارد درو میدادم سلام، سر کام، روز زن ام خداشت رو از از برامت که حالا دیگر برای از توفه ترکی و اشرافیت، او بعضای این وقتین قسمت ها ازگه نبود بودن دید که بود که آنهاد پول بدهند باید این گیری بود که بود من نشد بود از مشروع یا اما در رفت مفتر رو و در شدن و یا دونه خیلوز و بر رفتان بذاری و بر بساری بیخویش برستن که چه؟ که بله ما هم بچه داریم مرد شور و بر اول مثلت این گیری نه اون یک امیلیتی تنها مدارو چه کنالی چه ایدیم این که بسترداشت خماده خست رو به رفت رو درسیم هم که از این خرید میگویم نفرت از این خرید رو میگویم این حسرت بچه درستن رو دارید با دل خوبی محبتی که ندار جایی خود فرق شده از روز بروز حسرت انساج رو از الاف در ها و بزرگتر 10 سال و بیش سال و سی سال جو اما تا آقالت دو تیز کمه از تایفت های خودت حالا حالا که این کودک دیگر ما بیشو باید گردنی را زیبه افتر برو من لعبه چهری میخواهد گردنی لعبه بچهی خواهد این یه اینجوری که از درون بحث که مگر بابا مصلحت در زمینه لا به هزار تو احمد کردی بود که پیاو از درون که مگر تو کردی ببینم مگر که بچه فر یا در ماشین مادرش هم برای مگر چه فرقی هست میانی که تر فاکروزدی بلن چازه بر بچه ی برن که چند برای بسرونمی رو خود از درم درم یه بود فرزم تر فرزم مگر چه فرقی به هم برن هست که من صناعی ازاهمت دیگر جنسی یا دارت فقر و بیماری و یا مادری after restaurant you have our therapy of the restaurant so only the food is good but the restaurant is not good we have a good atmosphere and we also have a good view of the mountains and the restaurant is very good guys so we have sweet and sweet tea and رضاعت مستره این بعد هم نو رسند این کارها لولشان همون دنگاهو خیریه که من از اعمال خیری بیزار است با ترزه در همون حوضه اخلاقیت عمل خیری رو بیزار سکه ی شر است شر من جرکت به این مقابلش جار بگیرد و من و من حتی به این صورت حمل و نداشتم و به رسمیت نشناختن واقعیت می بوید بچه بود که به سر بزر... سرگذار بزر می یا و پشت در کلمتری را به فرداشتا می دهند بچه بود از که دوام را به پدر فرزندی یا مادر فرزندی را نام کمی می کرده و اول بودند یا کودک مزاهم راه آینده یکی ازان دو بوده و نفس مادرزاد داشته و هر صورت از اشت بوده که حتی در دامن مادر اصداش ریادی میکرد انواق چنین کودکی در زین دیگه من چی اصمی خواهد داشت درست همچنون موجه ای که دور هم او را نپذیرد و جلاله ای که از حکم دانی اصداش هم دیرون نرامده باشد اینجوری بود که مدتا در فکر مشهور بودن و نبودن بچه های فرراحی بودن این داغ داطله ای که در رحم و کشانی ایسی میزنیم که می معلوم نیست اما زده می شود از خود است یعنی اخلاق است عملتر است به حسوس نفر است به این حتی به عمل گمسی نفرت به این صورت چرا این در محین یعنی و بسیمی که زوجی خود به عدای چند کلمه عربی یا فرسی شده است که حسن صرف و دفتری با در وقت می گرد در هر هم بودن و چه حضرت هستی که پای عمالی به میان آمده چه صحب شده و چه صحب نشده چه در صنیت چند بفعله کن و بیرم شاید روزی ایس و خون و دیگر عربت اجتماعی عربت به هم بخارم درست اینجا می کنم و زیر دستی باشد و زیر دستی باشد و بالا دستی و حامور کنم در منزهی که جنگل باز نگردیم همه این ها یازم هستم بلی آقا بست آقا از این که حکر و خصوصیتنی روالت یکی دن اومد را که هر فقط سقط یک رایش نیمید کنن همین مقاررات از انتها پیش بایین کنده با نه تنها مایین کرده اول چند چونو چند آقا بدم بدم بزقر وزار می کند و جور کنید تو بسوار شبه زفاف به ها توی بار میهیده و اینها یعنی که من هر دور بسواری این یعنی عباده کنم بازنم من دوی مقارراتی هستم که انتا که من راست کده هست و بیگفالت من این همان باطله همه اینها تمدن هست و مذهل قانون هست و ارخ این ها از کردم بودش می کنید یک مستد رو بزن از بیر همه چیز مگر می کنید از همین ها سر پیچن خود خودا که نمی توانید که چیز از چرا تعاون اجتماعی رو مستد رو می کنید خطرلش به هره و تصد اشرافیت رو می بینید می‌بیدید که همین یک مسئله او تو چخنه‌تارا که اصاسا همه چیز رو برزه همه لحظ دارم می‌خواهم نستحنه باشم سربتش رو بیزن، من نمی‌توانم، من نمی‌توانم، من نمی‌توانم، من نمی‌توانم، من داشم، همه داشم جد مدعیه هست مقررات و باید و و این تضرب چه برد و این جوری بود که ظاهرن می‌گم چه آسوده این مقریه که از مقررات به شر این اولین آخری روش خانه ای اما از برای بیگر تکرشتر کنی کنم می بینم خورمات و مغالی هرات چهری که چهر رو که چهر رو که چهر رو که چهر رو که چهر از سال به اتبار چهردی معنی از چه دروفتی و بلشت کردی و عملی حیزنی امیخواهم بگونیم این ایورپی بیگر گایی با مارکشت اما دست یه این چرا وقتی این چیزها از دست می‌گیریم، چرا وقتی این چیزها از دست می‌گیریم، به این دارگوکی جنسی که نه وزیطه این خدور شد و نه هیچ یک از مغربات و شهر اول درم چه معمول دارد اگر یک عمل تاویزی و حیوانی گفت یک ماشینی از ارکو بانگیسی اول دهاره میفتند گزار خیال از سایش ارسیه بدندان ها و و در بایست که نشستی سعوی صورت های دیگر بخارد در حده های دیگه، در صورت اگر مکانیزمی از درای حضم غذا رو دوامه اما در صورت رو بروند به خصوص اگر دوامه کن دیگر در حضم من که نمیتا برانم که مطرقی داشته دا باشم چرا این مکانیز رو تاهم باشم فقط برای این که مشون را این نزند بیدینید که حتی براند صورتمون ه مشایی و این عراضل علماء به نهیار ماشین میسنگم به هر صورت دنبال همه این فیدها و ریاضها صورت دنبال همه این فیدها و ریاضها بود که به کلگم وست خدم کنم باشد و یک همه بسیاری مدرکوش من یک روز در آمد تو تو دیگر مثلا و دستان از من سو دیجی دار که روی صاف بذاشتن توی در خوش توی عوضت رو از سر هم بچه بر می شدی بسر بچه های که هست چشم ها روشت زحشب شد و من در زمینی روست هتو قرونه وجود یه نمی جز بر این نمی شد از چیزی رفاست این بود که ه بچه میخوایی بسیار خوب شبه لغمه را از خوشت و سر بده هم بگذاری طبیعتای اینجا اینست که بگذاری یک مرد خوشت تو رو بگذار کنی من از من از سربندم دفتر زنانه از قرمز غورمسال رو داشتیم چشیدم هیچ حرفی هم ندارم حالا من ندارم خوشت چرحن باورپن مجازی که اولی کمیتر کمیتر خوشت را به هم که بعد یک مرتبز از و زندگی یومان به زهره به این صراحات یک حفظ تعلق بود ولی راستی کدام گفته من که هنوز از رجوی لولو تو من چیدی نگفتنم بله مثل اینکه دارم نه چیزی را به هم حاکم کنم چطور راست مراتت بشن بله به ترتیب خاریخی